بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آل او المقدمه لا شک ان الحقوق والواجبات في الشرائع الالهیه والقوانین الانسانیه. بحث در زندگی اجتماعی است. در زندگی ما نیاز به قوانین هست این قوانین بعضی هاشون وظایف تکالیف الزامات بعضی هاشون حقوقه هر انسانی یک حقی داره در این حال یه هایی داره وظایفی داره تکالیفی داره هم اقلای عالم به این توجه دارن چه تچلیفم هست حقم هست هم دید به این توجه داره چه انسان تچلیفم داره حقم داره شما یه الزاماتی دارید اگر یک پولی رو یک پولی رو از شخصی قرض چرده اید الزام است بر شما برجردو دید یجب علیچه اصطلاح شریف برجردو او صاحب حق حق مطالبه داره میتونه از شما مطالبه کنه. اون حق داره بر شما هم تچلیف هست پس تچلیف و حق دو نکته است اساسی در زندگی اجتماعی انسانها البته در فلسفه غرب یه نکتهی هست من بین پرانتز میجم اینها در بحث تچلیف میجان اصل بر حق محوری انسانه نه تکلیف مهوری انسان. ما خاطر فلسفه اومانیزم درست شدن. اومانیزم روحش به حق انسان بر در ادیان الهی اصل رو بر تکلیف مهوری قرار دادند. انسان نسبت به خدا مکلفه. این بحثا البته زیاد ارتباط نداره چون در زندگی اجتماعی بین انسان ها ما بحث کنیم بین انسان تکالیفی داریم و حقوقی داریم. این اشاره کردم چه میشه این بحث رو نسبت به خدا هم مطرح کرد به همین خاطر در فلسفه غرب انتظار بشر از دین مطرح میشه. یعنی انگار بحث حق. با لباس حق به این موضوع داده میشه انتظار بشر از دین لاچن در عدیان الهی وظایف انسان ها نسبت به دستورات خدا مطرح میشه این زندگی اجتماعی سبب شده ما حقوقی معتقد بشویم و الزاماتی خب آیا در اینجا منتهی شده و تمام شده؟ نه بعضی وقتا همین زندگی اجتماعی می میکند گیر از افراد حقیقی زید و امر و به یک اعیان خارجی هم حقوق و تکالیف رو سرایت بدیم شما می بینید میان برای مسجد فرشی رو هدیه میدن خب آیا مسجد مالک میشه فرش رو یا برای مسجد میرن فرش میخرن بعد مسجد رو بدهکار میکنن بعد مطالبه میکنن میگن مسجد به ما بدهکاره پولشو بده خب اینجا ما تا شنیده بودیم انسان فردی که عاقل است و مختار است او حق دارد و الزام دارد تشتیف ولی در عرف ما میبینیم نه برای اعیان خارجی چه شعور نداره، عقل نداره، اختیار نداره، برای او هم تکالیف و چیز و جی برگر... میکنن؟ الزامات میارن. این یه مرحله ترقی است نیازهای اجتماعی سبب شده برای اعیان خارجی هم این تکالیف و این حقوق بیاد، این به خاطر مسجد مالک میشه. همین خاطر مکان حرم مالج میشه. اینو به حرم هدیه دادم. حرم به دهکار میشه. این یه مره. مرحله سوم میان اصلا مسجد یک وجود خارجی داره. به اصطلاح فلسفی وجود متأصل داره. متأصل یعنی اصیل. دوزه یکی از حقایق خارجی است. در این حال زی شعور نیست اما همین نیازهای اجتماعی، تطورات اجتماعی، کنش و واکنشهای اجتماعی، سبب شده برای هم همین دوتا رو بدن وجودهای اعتباری که نداریم مثلا برای صندوقی ما تشکیل داده این صندوق مثلا بیمه این صندوق بیمه موجود نیست یک وجود اعتباریه اما میجیم این بیمه بدهکار ببینه من به بدهکار بیمه بیمه هم. الزامات و حقوق رو به اونا هم میدیم به وجودات اعتباری شرکت چند نفری جمع میشن یه شرکتی ما به شرکت همین احکام رو اوگوگ و الزامات رو به اون شرکت هم نسبت میدیم. دیم نانچه شرکت امرون اعتباری یا وجود خارجی نداره شرکت مثل مسجد نیست مسجد یه این خارجی است اما شرکت یه وجود اعتباری است به رسمیت شناخته شده یه وجود اعتباری خب پس سه مرحله شد فرد خارجی که انسانه افراد بشر، فرد خارجی چه غیر انسانه سه افراد اعتباری الان در دنیای تجارت این افراد اعتباری هستند که با هم معامله میکنن. بدهکار میشن طلب کار میشن، الزامات میاد، حقوق میاد، بانک، صندوق ها شرکت ها اینا همش از چیه این اشخاص است آیا این حقوقی که ما برای فرد انسان میدیم چه در یه ای در خیارات میخورید خیار مجلس داره خیار عیب داره چی داره آیا این حقوق برای اون افراد اعتباری هم میاد یا نه این حقوق برای فقط فرد بشره در عالم اوغلا چی میاد در زندگی انسان ها اوگلا این حقوق رو فرق نمیذارم بین فرد حقیقی و فرد حقوقی به اونم میدن این احکام رو این الزامات رو بحثی در حقوق نیست بحث در فکر اسلامی است آیا در فکر ما چجور جور ملاحظه شده آیا همون احکام و الزامات تا به گنعل نعل از فرد حقیقی به فرد اعتباری هم داده شده یا نه موضوع این کتابینه موضوع این کتابینه اولا ما باید از شخص اعتباری رو خوب معنا کنیم ما از شخص اعتباری با این بیانی که من کردم از شخص اعتباری دو تا داره یکی این خارجی غیرزی شعور مثل مسجد و معبد و اینا عرم و اینا یکی هم اصلا فرد اعتباری محض، هر دو اینها از شخص اعتباری می جن. در مقابل اون اولی میشه از شخص الحقیقی آیا احکام از شخص الحقیقی چه نادر فکر می خونیم تمام اونها، در چه در چتاب بیت، چه در کتاب اجاره، جعاله، شرچت، مزاربه، همه اینهایی که در فکر، به عنوان فکر المعاملات خونده میشه برای اشخص و همه اونها برای اشخص و اعتباری هم هست یا نیست؟ چه؟ این یک بحثیست هم کار بردی، هم متلابه و هم یک دور خوندن کل معاملات، اجاب واقعا این بحث به شکل مستوفا خونده بشه یک دور معاملات رو دوباره میخونه اینجا کل قراردادها ها رو میخونه خب این اصل بحث الان مقدمه رو بخونیم ال مقدمم لا شچه ان الهقوق والوازبات حقوق یعنی حقه ها اینجا به نظر درست نیست واجبات یا به معنای ام باید بگیریم منظور از واجبات اینجا به معنای الزاماته یعنی ام از محرمات مراد الزامات ام از واجبات و محرمات یا باید این ابارت رو در چابهای بعدی تصیح کنند به حقوق انالحقوق والالزامات چون واجبات رو چلا ما در به کار میبریم مقابل محرمات قرار میدیم ما اینکه مرادش از این واجبات در اینجا الالزاماته حقوق و الزامات در شرایه الهی و قوانین انسانی لا شچه کانت ولا تزال و محتحققتن لی افراد البشر هیچ شپه نیست این تکالیف و حقوق این الزامات و حقوق بود و هست برای افراد بشر یعنی برای اشخاص حقیقی هست این هیچ شچو شوبه‌ای یعنی زندگی اجتماعی این رو دارد که الزامات و حقوق برای فرد حقیقی باشه و هو امر معروف و مسلم من این یک امریه شناخته شده و مسلم غیر قابل مناقشه منزل گدم. از قدیم تتمل اشارت و فی علم القانون الى کل فرد من افراد انسان به اسم شخص طبیعی و از شخص حقیقی این تمام میشه فقط با اشاره به در علم گانون حقوق برای هر فردی از افراد انسان به عنوان اسم شخص طبیعی یا شخص حقیقی اومده یعنی این چه بیشیم حقوق و تکالیف است در هر علم قانونی اونطور اومده شخص حقیقی این حق دارد شخص حقیقی این الزام دارد به نظر لا تمتعی به هاتین المزیده این به خاطر این, این چه این شخص حقیقی یا شخص طبیعی از این دوتا مزیت بهره برمیدارد دارد اون دوتا مزیت چیه؟ الحق و الواجب یعنی الحق والالزامات خب تا اینجا لا شوبطه در علم قانونم علم حقوقم به این افراد بشر میگن شخص حقیقی یا شخص طبیعی اما در اینجا تمام نشده مسئله الا ابن شروط الحیات الانسانیه شروط به معنای تحولات و پیشرفت هاست نه شرط اصطلاحی ما شروط الحیات یعنی تحولات زندگی مهمتی. بله نه الان در لغ... ادبیات امروزی اینه شروط الا عن شروط الحیات الانسانیه تحولات و پیشرفت انسانی اکتزت اقتضا میکنه انتو قدره حقوقا و واجبات لعشیاء مادیت مختلفه چه همین حقوق و واجبات رو برای اشیای مادی مختلف یعنی اشیای مادی مقابل بشر دکت کنید بازم این وجود خارجی داره اما بشر نیست برای او هم همین حقوق و تکالیف رو بیاریم اقتضا میکنه یعنی ما الان زندگیمون منطوریست چه برای اونها هم باید همین حقوق و تکالیف رو بیاریم الا سبیل المثال و للمعابد متملکاتون خاصه ترصد از مته رسده ارصد لهو یعنی آماده چرت چیزی برای او و یعنی آماده میکنند برای معابد درامتهای های دارایی های متملکات یعنی دارایی ها ممتلکات ببینید برای معابد مسجد، چنیسه، کلیسا دارایی‌های های رو آماده بیکنن میارن مثلا یه نفر فرش میاره میده یه نفر مثلا چراغ میاره میده دارایی‌های های برای اونا میدن اشخاص نمیدن آه. متولی هم قبول میکنه برای مسجد میشه این فرش مال مسجد آه. مال مسجد یعنی چه یعنی مسجد مالک شد خب بعضی وقتا همین مسجد ما استبدلت چه بساعت استبدال میکنه یعنی تبدیل میکنه ادارت المعبد اداره معبد میاد او استب... تبدیل میکنه ببینید میشه تبدیل غیر از بیر و فروشه یعنی معاوضه میکنه اهم از بیر و فروش من فرش نیاز ندارم عوض فرش به من چیز بده. مثلا سماور بده. نمجن استبدال. لزومی نداره با بی و شرابجه ها. یه وقت میره فرش در بازار میفروشه سماور میخره. یه وقت نه. اون فردی که فرش میاره میگه شما اگر معاوضه کنی تبدیل کنی به سماور بهتره این میره سماور میاره. روبه ما استبدالت ادارتون به ابد. او یا میفروشه و اشترت یا میخره تلچل چاپ این دارایی ها رو اما به اسم فرد نمیخره به اسم معبد ذاتهی خود معبد میخره یا حتی بعض وقتا چانه میزنن چجور چانه میزنن میره بازار میشه برای وسط میخره ما عرضون بده به اسم معبد میخره فاکتورم مسجد فلان خب این لوازم داره و من طبعات زالج لوازم این استبدال و این دارایی ها و خرید و فروش اینه چه ان من معبد وقتی معبد یه چیزی رو می فروشه باید فروخش بعدن لوازم داره الزامات داره وقتی تو یه چیز رو فروختی شخص حقیقی باید تحویل بدی دیگه. پس باید معبد تحویل بده و منتبعات زالک انگل يلتزم المعبد به تسلیم البزاعه بزاعه این یعنی اون سرمایه اون کالایی که فروخت به شیع المباه یا اون چی فروخته شد بزاعه یعنی در اون استبدال مثلا مترک کنیم چون سرمایه چی یا در خرید مترک کنیم پول رو باید تحویل بده یا اون در استبدال اون چی میخواد بدل بگیره اون خب مبادله رو باید تبدیل بده تحویل. اون شی مباح هم در جایی که میفروشه او یطالم یا معبد این حقو در اون الزامات یلتزم یعنی اینجا هم حق معبده اویو طالب این معبد حق داره مطالبه کنه به استلام بزاعت المشترات چه چیزی رو مطالبه کنه؟ چه تحویل بگیره استلام یعنی تحویل بگیره اون مالی چه خریده؟ یاقا من مسجد دو ماه قبل از شما روسته چی خریدم؟ از اینا خریدم خب تحویل بده؟ چرا تحویل نمیده؟ این حق کو رو داره و معنا ذلك معنای این جمله ها در عرف و علم قانون اینه معنا ذلك ان يكون للمعبد حق و واجبا انسان برای معبد هم حق و واجب مطرح میشه مثل انسان حقوقی مطرح میشه الزاماتی مطرح میشه خب اینم یه مرحله ترقی مرحله سوم لم یه الامر عند هذا الحد این امر منظور امر حق و تجدیف. در این حد متوقف نشده ففرزت فرزت یعنی لازم کرده فرض اینجا یعنی این لازم رو به انسان آورده این واجب رو به انسان آورده چه چیزی لازم کرده؟ تطورات حیات اجتماعی تطورات تحولات حیات اجتماعی و حاجات حل یومیه نیازهای یومی زندگی اجتماعی، این نیازهای که المتزایده روز به روز روز افصول میشه اینها تحولات اجتماع نیازهای زندگی اجتماعی فرازت واجب کرده به مرور زمان واجب کرده چه چیزی رو این الا، متعلق است به فرزت ان تعترف بالحقوق والواجبات لبعض الچیانات به این چه اعتراف کند به همین حق و واجب در بعضی پدیده ها چیانت یعنی پدیده در اجتماع اینجا میخواد بگی بعضی چیزهای اعتباری در اجتماع پدید اومده مثلا صندوقه شرچته نیازهای بشر اکتزا چرده، بشر رو لازم کرده چین این حق و واجب رو برای اونها هم مطرح کند چیانات پدیده هایش در مجتمع به وجود آمده لزوماً پدیده ی حقیقی نیست ها هستی هاییست اعتباریه مثل صندوق و و بانک و اینا. فضلا عل الانسان و الاشياء مادییت الاخرى علاوه بر انسان و اون اشیاء مادی اشیاء مادی چه خوندیم علاوه بر این دوتا مثلاً مثلا چل جمعیات خیریه جمعیت های خیریه و مؤسسات مالیه و شرکات برای اینها هم همان حق و, حق و الزامات رو سرایت دادیم خب به این کیسم از مؤسسات میگن شخص اعتباری و دشاری فی علم القانون اشاره میشه در علم القانون لحاظ از صنف مین المؤسسات به این صنف از مؤسسات به اسم شخص اعتباری یا شخص معنوی در مقابل شخص جسمانی این شخص معنوی او شخص الحکمی در مقابل شخص حقیقی بهش میگن شخص حکمی و شخص حقوقی در مقابل حقیقی بهش میگن شخص حقوقی فل ابحاصل قادمه میگه ما به خاطر جهاتی شخص اعتباری میدیم چون وجود اینها اعتباریه وجود اینها البته اون معبد خودش اعتباری نیست اما احکامی که به اون میدن اعتبار میکنن برای اون سنعبر از حاض سف صنوبر از حز سف به شخص ما اون از این سنف شخص اعتباری خواهد بود، چتاب رو را هم گذاشتیم به نام شخص اعتباری. لأنه نه وجوده ان وجود من سنخ وجود اعتباری، اگر وجودش از سنخ وجود اعتباری باشه بهتر عبارت همینه. چنانچه چما سند و قده محفل اپاس تالیه، چنانچه در بحث های آینده خواهیم خوند، وجودش از سندخ وجود است وجود حقیقی نیسته، بانک وجود حقیقی نداره، ساختمان بانک رو ما پانک رو یا صندوق بیمه شرکت وجودهای اعتباری هستند، بحث خواهیم کرد نحوه وجود اینها رو، فَسَيَكُونَ هَازَ اقرب اَقْرَبِ الْتَعبِیرَنْ حَقیقَتِ این عنوان نزدیکترین تعبیر است به حقیقت این سنف و چزاله چسنو اب برانی الاشخاص من از سنف الاول به شخص طبیعی از اون سنف اول اون اشخاص رو خواهیم گفت سنف شخص طبیعی اشخاص میشه شخص طبیعی این سنف میشه شخص خوشمی یا شخص اعتباری که ما شخص اعتباری عبارت رو خواهیم آورد خب فعلا این مقدار تا جلسه اول است انشاءالله از فردا مفصل خواهیم خوند السلام علیکم و رحمت الله فرد.